درود شنوندگان رادیو البورس. عرض ادب خدمت همه شما. نگاهی می اندازیم به آخرین اخبار دانماک در هفته که گذشت. پیدا شدن یک جنازه در سنهول. روز شنبه پلیس جنازه یک مرد 47 ساله که توسط یک چاقو به قتل رسیده بود را در کمپ پناهندگی سنهول پیدا کرد. در حال حاضر پلیس در حال بررسی آثار جرم می باشد و کسی مظن به قاتل دستگیر نشده است، اما پلیس میگوید قاتل در همین دیوارهای سنگر پیدا خواهد شد. علایم راهنمایی و رانندگی جدید در دانمارک از یک اکتبر تعدادی از علایم راهنمایی و رانندگی جدید در جادههای مختلف دانمارک نصب میشود و توجه و رایت کردن به این علائم اجباریست. پس شما هم حتما رایت بفرمایید. اعتراض دختر ایرانی به تصمیم ممنوعیت هجاب خانم ویکتوریا دوابی اهل ایران است و در دانمارک زندگی میکند او میگوید که از کودکی برای آزادی جنگیده است و در ایران مجبورش میکردند که با روسری به بیرون برود او میگوید که از بچگی در مورد دموکراسی آزادی بیان و آزادی مذهب یاد گرفته ولی در حال حاضر در دانمارک زندگی میکند و میخواهد حق انتخاب آزاد را داشته باشد. او میگوید کسی نباید زنان را سرکوب کند و آنها باید حق انتخاب بدن خودشان را داشته باشند. آنها باید خود انتخاب کنند که میخواهد روسری داشته باشند یا خیر. ملکه دانمارک ما یک کشور چند فرهنگی نیستیم. اینکه خانواده ملکه مارگارت مخلودی از کشورهای سوئد، آلمان فرانسه استرالیا انگلیس یونان و چین است اما ملکه یونان میگوید دانمارک کشور چند فرهنگی نیست ملکه مارگارت در مصابهای با رسانه های آلمان درباره اینکه آیا کشور دانمارک کشور چند فرهنگی است گفت من نمیخواهم بگویم که ما یک کشور چند فرهنگی هستیم اما در اینجا تعداد بیشتری از مردم با ریشه های گذشته ها و مذهب های مختلف نسبت به سی سال پیش زندگی می کنند. دانمارکی های خیرخا حمیده را کمک کردند تا بماند همیده که اصالتا اهل افغانستان است و در دانشگاه درس مشاور حقوقی می برای تمدید اقامت خود اقدام کرده است اما از آنجایی که مدت رسیدگی به جواب اقامت ماها و حتی سالها طول میکشد. حمیده می‌بایست دانمارک را ترک می کرد و یا اینکه هزینه دانش... دانشگاه خود را پرداخت می کرد تا بتواند در دانمارک بماند و از دانشگاه اخراج نشود حمیده توانست با کمک مردم انسان دوست دانمارک هزار کرون برای پرداخت هزینه دانشگاه جمع بری کند تا بتواند اجازه بودن در دانمارک را داشته باشد به تحصیل خود ادامه دهند دعوای اصلی این روزها در عالم سیاست دانمارک دعوای پولدارها و فقراست. پولدارها می‌گویند باید مالیات کمتری بدهند و دولت باید به جای مالیاتی بیشتر گرفتند از آنها کمکهای مالی به فقرا به ویژه کسانی که کنتدیات میگیرند را قطع کند احزاب حامی پولدارها هم قرار است از هفته آینده جنگ اصلی را شروع کند. جنگی که در صورت عدم پیروزی به متلاشی شدن اعتلاف شکلنده احساب راستگرا و برگزاری انتخابات خواهد انجامید در این رابطه روز, چارمه... روز چارم روز تظاهرات بزرگی در مخالفت با سیاست‌های دولت راست‌گرای دانمارک برگزار شد. این تظاهرات در حمایت از فقرا و دفاع از رفاه اجتماعی بود و در مقابل مجلس دانمارک برگزار شد. شکست وزیر مهاجرت دانمارک در دادگاه بین‌المللی. استوربرگ حق جدا کردن زوج‌های کم سن و سال را ندارد. پس از مدت کشمشه... کشمکش سرانجام دادگاه حقوق بشر اروپا به غیرقانونی بودن اقدام دولت دانمارک در جداسازی زوجهای زوج زیر سند قانونی رای داد. وزیر مهاجرت دانمارک با اعلامی خبر گفته است با توجه به تعهدات بین المللی کشورمان و به ویژه مصوبات مندرج در کنوانسیون ژنو ما حق دخالت در امور زوجهای پناهجویی که به کشورمان پناه آوردن را نداریم ماجرای زوجهای زیر سن از زمانی شروع شد که استوربگ دستور جدا کردن زنان و دختران زیر 18 سال پناهجو از همسرشان را صادر کرده بود این اقدام باعث جدایی اجباری دهها زوج پناهجو شده بود که در کمپ های دانمارک منتظر پاسخ دولت برای عقص پناهندگی هستند های دانمارکی رای دادگاه حقوق بشر اروپا را شکست سنگینی برای می دانند. سالگرد 10 سالگی آمبولانس هوایی دانماک یکی از مجهترین اوژانس های هوای دنیا، سهشنبه چه اکتبر سالگرد آمبولانس هوایی دانمارک یکی از مجهترین اوژانس های هوای دنیا بود. 10 سال پیش در روز چه اکتبر، اولین آمبولانس هوایی دانمارک در مالکییت، پایگاه اوژانس هوایی دانمای به هوا برخاست. پایگاه هوایی... پایگاه اوژانس هوایی از چند سال پیش آغاز به کار کرده است. سخنگوی این سازمان با بیان اینکه نیروهای اوژانس در شمار یولند، جنوب یولند و شیلند مستقر هستند گفت بیماران مشمول امداد هوایی با هلیکوپتر به مراکز ها منتقل می شوند. جایزه معماری اسلامی برای پارک مهاجران در دانمارک پارک سوپرکلین در کوپناک که برای مهاجران مسلمان با هدف ارتقای روابط بین آنها و غیر مسلمانان ساخته شده است میان برندگان جایزه معماری آخان قرار گرفت جایزه معماری آقاخان که بر روی شیوه های بومی و اسلامی و راهکارهای معماری کهن و نوین در توسعه جهان سوم متمرکز است روز دوشنبه به شش معماری برتر اعطا شد که پارک سوپرگلین در کپنهاگ نیز بین برندگان این جایزه بود وجود هایی با موضوع اسلامی ویژگی این پارک است که آن را متمایز می‌سازد. این پارک در منطقه محروم مهاجران مسلمان در کپنهاگ به عنوان محلی برای دیدار مسلمانان و مردم متشکل از ش ملیت این شهر ساخته شده. جایزه معماری آقاخان جایزه‌ای در هر سه سال یک بار از سوی بنیاد شبکه توسعه آقاخان به یکی یا چند معمار زنده اهدا گردد این جایزه که در سال 1977 میلادی از سوی کریم آقاخان پایگذاری شده، از نظر مالی برترین جایزه معماری در جهان به شمار می‌آید. به برنده این جایزه یک میلیون دلار آمریکا اهدا شد هزار شغل تخصصی فیسبوک در شهر اودنسه ایجاد می شود فیسبوک سومین دیتابیس بزرگ خود را در دانمارک افتتاح می کند شرکت فیسبوک قصد دارد تا در شهر اودنسه سومین دیتابیس بزرگ خود را در اروپا احداث کند که با احتساب این مرکز جدید تعداد کل دیتابیس های فیسبوک در سراسر جهان به هشت مرکز خواهد رسید پیش از این مراکز دیتابیس فیسبوک در اروپا، در سوئد و ایلند احداث شدند. همچنین شمار دیگری از مراکز اطلاعاتی فیسبوک در شهرهای مختلف آمریکاس و قرار است مرکز دیگری در پایتخت مکزیک رو انداز شود. مقامات فیسبوک در حال حاضر زمینی را در شهر اودنسه، دانمارک برای ساخت یک مرکز دیگر خریداری کردن این شرکت آمریکایی به دنبال گسترش و توسعه زیرساخت‌های خود با احداث مرکز مختلف دیتابیس در سراسر سر جهان است. جایزه جشواری سینمایی اسکاندیناوی به یک مهاجر کرد مقیم دانمارک رسید. جایزه شفق قطبی بهترین انیمیشن اولین دوره جشواری سینمایی بین‌المللی اسکاندیناوی نصیب انیمیشن مهاجر کرد مقیم دانمارک شد. این جشنواره مراسم افتتاح و نمایش فیلمهای برنده و اهدای جوایز را از هفتم تا دوازدهم سپتامبر در شهر هلسینکی پایتخت فلاند برگزار شد در بخش پویا نمایی جشنواره المللی فیلم اسکاندیناوی انیمیشن آغاز دوباره محصول مهاجر کرد مقیم دانمارک برنده جایزه بهترین انیمیشن شد در این انیمیشن تصویری از یک دیکتاتور به صورت کج روی دیوار آویخته شده است ولی همگان از ترس دیکتاتور حتی جرأت راس کردن عکس کجو را ندارند دور جدید کاری پارلمان دانمارک آغاز شد نخستین نشست پارلمان دانمارک سهشنبه در کوپنهاگ با حضور 179 نماینده و ملکه دانمارک و پرنس مری و ماری و شاهزاد فردریک آغاز شد بیش از پنجاه خبرنگار و عکاس و فصویوردار در صحن پارلمان حضور یافتند تا مراسم افتتاحیه بعد از تعطیلات تابستانی پارلمان دانمارک را پوشش خبری دهند و آخرین خبر توسعه نیروگاه های بادی در آفریقا توسط دانمارک سه درصد نیاز جهانی به برق در نیروگاه‌های بادی تولید می‌شود. ظرفیت تولید این نیروگاه‌ها به زودی از ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌های اتمی فراتر خواهد رفت. سال گذشته پنجاه میلیارد یورو در این زمینه سرمایه گذاری شده است. وستاس دانمارک یکی از بزرگترین مزارع بادی در یکی از مناطق جدا شده در آفریقا می‌سازد. وستاس شرکت الکترونیکی دانمارک که در زمینه تراحی و تولید و بازاریابی توربینهای بادی فعالیت می کند. تشکر از توجهتون شاد باشید